من دوری هستم من همه چیزا رو زود یادم میره حوزن کتا مادت آفریم دقیقاً باید همین روی خیلی خوب حالا ما بانمود میکنیم که دوست داشیم بشه سلام داری چطوری شو <تصفيق> دوستانی قایه مشکل بازی کنیم باشه خیلی دوستان ما قایه هم میشیم برز چه مردن باید پیدا مون کنیم باشه بابا نه نه نه بابا نه من مایه خوبیاستم که میخواد باها دوست باشه باشه باشه بابا من میخوام قایم بشم حالا تا 10 بشمار 1 2 3 4 5 6 7 خیلی نرمه مامان من میام پیش اون دوری دوری دوری آواز بخونش یادت باشه باید از امواج سیرکش دوری کنی. خب عزیزم اون شعری رو که یاد ادادم بخون. یه موج ازیرکش می‌بینیم باید بگیم بفندیم. نه نه درستش نباید بریم. خب دوباره امتحان می‌کنیم. وقتی یه موج ازیرکش می‌بینیم باید بگیم سیرکش ورزکش ورزکش ورزکش ورزکش ورزکش ورزکش ها ها دست من ناراحت شدیم نه نه نه هسته به هیچ بچه من چه فکر کردی اگه شما فرموش کنم چی؟ ها تماما فرموش میکنیم ما دل. هیچ دل. وقت رو فرموش نمی کنیم داری و تا هم هرگز ما رو فرموش نمی کنیم ها <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> سایت تاینی موویز با افتخار تقدیم می کند در جستجوی دوری مدیر دبلاش اشکان صادقی زبط در استدیو آواشه صدا رو شنیدی؟ چی؟ چی رو شنیدم؟ انگار الان یکی گفت آهای کی؟ من صدایی نشنیدم نمیدونم سن فقط شنیدم یکی گفت آهای بابا با با کلی ماهی اینجاست هر کدومشون دقیقا میتونم بگن آهای اونه های اه؟ اونجاست اونجاست ببینش اونه هاش کجا؟ سلام, سلام. ها خدایی من اون یه بچه هست سلام سلام بچه جون بیا اینجا اه اه اه سلام سلام من جوریم سلام، چطور حالت هستی؟ سلام دوری، دوری جون گم شدی؟ خب مادر پدرت کجان؟ اصلاً یادم نمیاد. اوه، خب اطرافو ببین. کدوم اینا والدینت؟ سلام، من دوریام. چطور حالتمه؟ آ سیزم همین الان اینو گفتی؟ راستی؟ اها. من زلت میخوام حفظه کتامادت من مشکل داره آه عزیزم حفظه کتامادتت خب یه دقیقه همین جوایسه باشه عزیزم سن آه، آه، چه چه چه چی کار کنیم تفلکی گم شده چه میدونم باید یه کار کنیم چی کار بیتونیم با کنیم یعنی خب یه فکری بکن اهل هر جایی میتونه باشه داری. اگه زیادی حرف بزنیم شب از غرب جربه کبره میست دوری عز من دوریم خایماتم گم کردم کمک هم میکنی؟ من دوریم حاضر کجا مدتم مشکل داره باره باید شنا کنم باید ادامه بدم نه باید باید دارم سلام من خونه وادم و گم کردم کمکم می کنی آخرین بار کجا دیدیشون خنده داره ولی یادم رفته آه عزیزم دوست داری همراه ما بیای این بهترین جمله بود که تا حال شنیدم ولی مشکل اینه که من چیز یادم نمیاد به هر حال ممنون باید تنبال یکی دیگه بگردم آه. یادم نمیاد چرا یادم نمیاد سلام من دوریم از حرفم نراحت شدی؟ شروع کردم حوالتون به چراغ نفتی. دنبال یه جدی دیگه می‌گردم. خب قشنگ متوجه شدم دیر وقته خوش بگذره. امیدوارم چیزیه که دنبالشی پیدا کنی. تو هم همینطور. من به دنبال چی بودم؟ معذرت می‌خوام. عذر می‌خوام. ببخشید. خب بدل می‌بینمت. نری دیگه نای غریبه. غریبه. ها؟ بی، پسرم بردا. پسرام. کمک کام کنید. او. او ببخشید ببخشید. حالت خوبه؟ بردانش. خاموش شد. دیگه کارش تموشه. شو. داره اون رو می‌کشه. شرنار گیر افتنش بردانش. قایق رو پیدا کنم. باید پیداش کنم. صبر کن. من یه قایق دیدم. تو قایقو دیدی؟ من دیدم از این طرف. تو مرا بیا آه. بیا. علی مادر، واقعا راست بوده بودا. امارلین هی بچا من علمدن الاف... دوری ببین گوش کن الان نستا شده تو بعد بگیری بخوابی. بخوابید یه رد واسه این الفو بغ دار باش شرمنده میرید بخوابید هی مریدا برگرد بخواب میفهمی خیلی ساده است خواب برو خواب گرفتم ببخشید هی مرد، آخ، دستتو ظابرا شدیم، تموم شد، بدیم روزمون آغاز کنیم. ما قبلنه دنبال یه چیزی میگشتیم. نیمو. آره، انگار همین دیروز بود. راستش خود دیروزم یادم نمیاد دیروز همین امروز بود. اصلاً ولش کن بی خیالش. به نظر من طرز دکتر این قسمت داستان اون 4 تا کوسه هاش بودن. 7 تا کوسه بوده. نه، نه، نه، بدرشک 4 تا بودن. بله، 4 تا. فکر کنم گفتی 3 تا کوسه بودن. صبر من کدوممون کلاغیان سوتی کرده؟ پیدام خب آخه ما هم کلی اوگیانوس و دنبالش گشتیم یعنی اول اون رفتم <م Authric ETF> بکنم درسته یه جوره خب بلاخره اومدین داشتین گردش علمی را از دست میدادی گردش علمی اومد اشهر سفرم کجا قراره بریم بکرم بهت گفتم من بهش نگفتم آداری آقای ری امروز باید از کلی بچه مراقبت بکنه فهمیدی؟ پس توصیه من به تو اینه که امروز سر کلاسه درس حاضر نشی نظر مصبتت چیه؟ خبه چرا؟ میدانی خب چون تو کایش زخلش زارو در واقع فراموش می‌کنی اینو قشنگ یادم <تصفح> میاد ببین اینش در واقع تقصیر تو نیست ولی ممکنه باعث بشه که تو توی دریا گم بشی <تصفح> اون وقت آقای رای اصلا وقت نداره که دنبال مایه‌های آلزایمری گم شده بگرده می‌دونی چرا اینجوریه اون وقت چون اون دست تنهاست مادی می‌دونی چرا میدونی خیلی کار می‌کنه اصلاً نمی‌دونستم خب خوبه الهی شکر پس باید امروز کمک معلم باشم خب نه دقیقاً خیلی مفتخر شدم طوری دستیر معلم نبودن بیچاره تو آقای رایی دوری میخواهد باشه دستجارتون خیلی آنیه خیلی بچه ها روز ماهوده یردش علمی محاجرت پت و ماهی ها خب ببینم کسی مینونه چرا ما محاجرت میکنیم زود باشید باید این چیزاره بدونید محاجرت یعنی بازگشت به های رخت خب هره نه بایش اینا نه مهاجرت برای رفتن به خونه هست خونه است. یعنی جایی که ازش از اومدید از کجا اومدید؟ میتونیم بگی نهل کجایی؟ من از بالایی سخره خونه ها خونه ایما پونزت میتونی اون طرف تخونده من افلاه جل و که هست تو کجا بزرگ شدید داری؟ من؟ ام... نمیدونم خونه با ته هم کجا هستن؟ هم؟ می‌فهمیدونام <تصفيق> چطوره. هی، چرا؟ چرا مشکلتام می‌دونی چه؟ من... مشکل نه حافظه ی کوتا مدت داری. اگه حافظه ی کوتا مدتت مشکل داره، از کجا می‌دونی خانواده داری؟ خیلی خوب، یه سوالی خیلی خوبیه. ببینید بعضی چیزا رو یادمه چون بدیهین مثل اینکه خانواده دارم. می‌دونم چون به هر حال از اینجا جایی باید اومده باشم دیگه. همه خانواده دارم فقط من اسمشون و قیافه‌شون رو یادم نمیاد. می‌دونم مثلا بازم می‌بینمشون یا نه. ام... هشتن چی میگفتن؟ مادر و پدر. مادر و پدر رو درسته. چرا در موردشون حرف می زدیم؟ اوه اون کلاس. اوه چرا من خیلی خب شما خیلی کوچیکید ولی خب ببینید بچه‌ها وقتی دو تا مایی عاشق هم دیگه میشه. همینجا باید غطش کنم. وقت حرکت ماجراجو هست. بزنیم با هم دیگه سرود حرکت گروهی رو بخونیم. آه... وقتی که به سفر میریم می‌بینی چیزهای عجیبی و همینطور چیزهای شگفت‌انگیز وقتی که سفر میریم می‌بینی چیزهای عجیبی همینطور چیزهای شگفت‌انگیز حاجرا و حاجرات بری در موردش یاد بگیریم بابا هجران ماهی ها تو آقیانوس میچن خب شنیدید همه برید عقب کش کش کش کش کش <تصفح> خب بچه ها بپرین پایین خیلی دوره زود باشید به جمعید برگردین سر جا جون بست دیگه شلوغ نکنین خیلی دور شدین آگوش کنین خب دلم میخواد همه تون خوب گوش کنید وقتی پرخم آقی ها اومدن همه, همه باید, باید, باید, باید, باید, باید باید باید باید باید باید باید چی باشن امواجه زی چون امواجی که از بال‌هاشون تولید می‌کنن خیلی قویه اگه مراقب نباشن ممکنه کشته بشن به خاطر همینه که باید مراقب باشی بخوی ری سفره ماهی‌ها از کجا بدونن کجا باید برن غریزی غریزی نه ما یه حس قوی درونی که باید بهش گوش کنی مثل یه آوازی که همیشه بلند بودی بسر درام صداشونو میشنو بری آه ما تونید فقط دورشو قبلت کنید. نگین خلیج موریا کالیفرنیا. نگین خلیج موریا کالیفرنیا. یه چیزی یاد. یه چیزی یادم اومد. واقعا یه چیزی یادم اومد. یه چیز مهم. یه چیز مهم؟ خب بگو ببینم اون چی هست؟ آها. زیاد مطمئن نیستم نو که زبونم می گوه. خیلی خوب، خیلی ممنونم آقای ری. هسه اینو ادیت ب‌هز دو یه بازی جرر نیار داری. اوه اوه اوه چی شد؟ یادم توه مح. آخ. یادم نمیاد یه چیزی در مورد اوه یه چیزی در مورد نگینه خلیج مرویه کالیفرنیا. خونه و آدم خونه و آدم اینجا میونه. بیاین نشون کونم. بچو بیا فاجا come back. بچا بچا. اوه بچو شما کجایی؟ دوری دوری. شما خودت که داشته رفتی؟ خونباتم هم یادشون رو بردم فایستا ببینم چی یادشون شیدارش... رو آنها رو به خاطره بردم بادران پردران که خونباتی دارم چیون؟ اونا نمی‌دونن من کجا رو کاشفین. این دیونه کیه دقیقا بهم میگه کجا میخوای بری؟ به نگینه خلیج فارس میخوام برم، شتاند بالتیک، بالتیک. میخواد بره موری کالفورنیا. آ، دوریکالیفرنیا <تصف> درست اون طرف اقیانوس قرار داره. بیا سن رو برو. باخه من به چه فلاکتی گرفتار شدم که هر بار میام روی این صخره یکی تو میخواد بره. آخه یه بارم شده از منظرهش بیادولن زل بزنه. اگه خونه بودم بیاد آوردم. چطوری میتونم از منظره زل بزنه؟ اما آخه روز وقت نیستیم. روز وقت هست دیگه ما تموم شده. اصلا برای همین کلی کشتی اینجا رو پیدا کردیم که دیگه هیچ بarda konim fahmidi yar Khayesh mikonam faqat midunam delam bar injonte hang shode Khayli khayli doostaram bebinam eshun mesle in mimune ke este sho de har ki mikoni khodetam ye hamchin dardi o tahammol kardi bale midunam taghiqan che hissi dare نمیخوام این حس رو فراموش کنم خانوادم یه جای تو اقیانوسن خواهشن مارلی تنهایی نمیتونم نمیتونم پیداشون کنم فراموش میکنم لطفا کمکم کنم خانوادم رو برام پیدا کن آره بابا تو میتونی ما رو ببری اون بر اقیانوس نه؟ نه ولی خوبیه نفر رو میشنستم I got body I better prove it اتصواقع منو کیفتم چرا کباب نمیخواد فرموساسی من برمیگه نه حکم اون دیگه کلابرتول بیارم بالا میدونه ولی به نظر تو آنی نیستش آره خیلی داره حال میده آخ صورتو طرف چای دم آبدار بدی آخه اینبرو یامو زبودی اونور خیلی حالتر میده انجام بده اینتر معامله تو سرسوده آخه بیا جون منو خونه و دام بگردم تو خلیج چی بگین خلیج ماری کالیفرنیا چجوری میخوای پیداش کنم یاد از میاد اونا چه شکلی بودن یهو چشم حافظم ریپ میزنه ولی مطمئنم یه حسی بهم به میگه رنگشون آبیه شدهام زرد نمیدونم فکر کنم درسته یه روزی حفر دارم وقتی ببینم ایشون میشناسمشون خانواده این دیگه عادت باشه گذشته از اقیانوس فقط باید یه بار تمره زنجام بدی بعد یه بار خلیج بروی کالیفرنیا دستگیرم بفهمم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 او اینجا برای ما آشناست. مامان، بابا. نه نه این کارو نکن. دوری. بلندتر داد دوری. بزن دوری. مامان، بابا. نه این کارو نکن. صبر کن وسطی. اینقدر داد بزن فکر کردید مادر پدرت اینجا نشسته منتظر تو هستن؟ او اونو نمیدونم ولی فقط یه راه برای فهمیدنش از مامان بابا. اون چی بود؟ مامان، بابا. اشت. اون چی بود؟ سب کنید اینا قبلا اون سالا شنیده بودم یکی میگفت چی میگی واسه خودتون من بودم یه دقیقه پیش گفتم تو رو خدا بگی آمانی و بابای که من ندیدی اسمشون جنیو چارلیه جنیو چارلی؟ جنیو چی؟ چی چی؟ این اسمشونه والد اینم جنیو چارلیه تو داداری سب کن جنیو چارلی بدهی قارون بگیر نشه چیزی بکشیم آفره جنیو چارلی جری! ای ببخشید کیم هیجان زده است؟ چالی! دوری جلی! دوری, دوری خواهش می کنم جدی با دردت دقیقه داد نزن. طرف شیش تیمال جدید اینقدر بخواد جلب توجه بکنه. چرا نمیفهمی؟ اسم والدینه نمو یادم اومده جری. دوری چالی! دوری دوری این خرچنگا بچای اینجان. وقت وقتی این دلیلی داره دارن شیش شیش می کنن. شال چیز خطرناکی این دور اطراف باشه قبول نداری؟ اوه منظور دی موجود با چشم گنده و شاخک و بیلبگ. حالا اینقدرم دقیق که گفتی نه ولی خب اینم شین چیزی. بله. یه چیز خطرناکی بعد این دور اطراف. سلام جنابه خب اسمتونه نمیدونم ببخشید مستده وقت شریف شدیم اگر اجازه بدید زحمتو همین الان از تایی کم میکنیم بعدش اونقدرم ازتون ممنون میشیم که یه مجسمه بلاحت ازتون وسط اوکیانوز خواهیم خودمونه باله ها رو شکر کردیم هرچی قردی کنید سریع شکر کردیم بایده دفعی کنید زود بشیم خودمونه باله ها رو شکر کردیم Devo, devo! Devo, vi ho! Devo, ma mo' carta c'è nella cogliona! Lo vado lì! Ci ho fatto! No! Tori, Tori! Ora un bash! Dici che sei domandone o ne spammare mo? جنی چارلی جنی چارلی اسمی شنو هنوز زیادمه باید ادامه بدیم خیلی نزدیک شدیم ها تو ریت شده ها ای بخاک بسرم نه ما هرت خوبه ای بزارم خوبه چلو نجا ابو باشه باشه ای وای همه بیچاره ببخشید او خود جون ای بخاک بسرم نه ما گفتم تو... الان نه بس دیگه فهمیدی ابو وای نه اولیم میتونم رادی فیش کنم میتونم من میرم کمک من بیارم دیگه چیکار باید بکنی داری میتونی بری اونجا و منتظر باشی برو اونجا و فراموشش کن کار. کاری که خوب بلدی انجام بدی حق با توئه فکر کردم میتونم خونه وتمو پیدا کنم ولی نمیتونم واقعا معذرت میخوام من میرم کمک بیارم باشه این کارو ولدم الان درست میشه نه ما الان میام الان میام او های یکی جواب بده کسی نیست آهای کسی نیست اینجا سلام سلام من سگورنی ویورا هستم او سلام سگورنی به کمکت نیاز دارم لطفاً به ما ملحق شید عالیه عالیه عالیه تا با هم به تماشای اقیانوس آرام بریم و حیات بی‌نظیر درونش رو ببینیم عجالی سگور، بدید کجا اینقدر کوچیک داری تو اینجایی؟ بچه ها کمک پیده کردم سه گرنه قراره به همون کمک کنیه میبینی هیچ کس داری. به حیات اوپیانوس اینجا همینیت میموده داری نه, نه نه نه دوباره نه دوباره نه داری. بندازش این تو ببینیم مشکلش چیه داری داری, داری. ما میاریم از بیرون ما پیدات میکنیم به محسس نجات حیات زیر آبی خوش آمدید جایی که ما آبزیان رو نجات داده باز پروری کرده و د آی آی میتونی کمکم کنی کمک چسسی بخورم اپسی؟ آی! وقتی شده کمک کمک به نظر میاد کارمون تموم شد. مسخره بازی در نیار مثلا دشمنندی. چه خیال حال میده. آ، خیلی ممنونت. اگه... اگه دردم یکی بودی... بودی... چند تا... تو... کی بود... کی... کی؟ نه... اگه در... از... ولش کن، ولش کن، اصلا ولش کن، گدم نمیان اوه... اونه هم خوب بود، خوب بود، خوب بود، داره زدی تو... قریبه، فرکتی آه... نه آه... سلام حاله چطوره من داریم منم هنگم مرزت چیه؟ چی؟ مریضم برای همین آوردنیت قرانتینی اگه مریض دیستی؟ خودت مرز داری باید برم دومال خونواده آی وحشت نکن گیر افتادی چیه؟ چی شده؟ این چیه؟ این چیه؟ این چیه؟ آه آو، اونیچون جست خبر بدی بهش برعکس به انتقال میگن اینا رو به ماحیای داخل مؤسسه میذنن بعدش به اقامتگاه دایمی منتقل میشن به یه آکواریوم تو کلیولند ماهای اینجا با اقیانوس برمیگردن ماهای کلیولند تا ابد همونجا میمونن کلیولند نه نه نه نمیتونم برم کلیولند من باید برم موریه کالیفرنیا و خانوادهمو پیدا کنم اونجا همینجاست مؤسسه نجات آبزیان نگین خلیج موریه کالیفرنیا اونجا همینجاست من الان اینجا خونه مادام اینجان باید پیداشون کنم کوپ گودم نمائش گاہ من اہل نمائش گاہ چه جالب باید برام اونجا کجاست آ اینجاش سخت بچه مگر اینکه نه شدنی نیست خطرناک یعنی چی بگم من خطر دوست دارم یه فکری دارم فقط یه راهی هست که میتونم کمکت کنم به خانوادهت برسی اگه اینو بدی آره فکر خوبیه کمکم می‌کنی پیداشون کنم چطور که زینب گفت ننه ننه اون برچسبو میخوام تا بتونم به جای تو برم تو ماشین انتقال بعد تو میتونی بری تو مؤسسه و خانوادهت رو پیدا کنی فقط باید برچسبو بدی به من کدوم برچسب اوه یه برچسب بالا چسبیده یعنی یادت نبود برچسب خوردی آ وای نه معذرت میخوام مشکلی آفزای کوتا مددرم. حته یادت نیست در مورد چی حرف می زدیم؟ اصلاً نمیدونم در مورد چی حرف می زدیم. میخواستی برچسبو بدی به من. راستش برچسب ما دوست دارم برای چی باید اونو بکنم؟ چوبیتونم آ... برم کلیولند. کلیولند یه چیزایی در موردش شنیدم. چرا نمیخوای اینجا؟ بمونم منو به اقیانوس برمیگردونن و خاطرات وحشتناکی از اونجا دارم. فقط میخوام توی خونه شیشه خود خودم تنها زندگی کنم. برشست با بده دیگه خیبه برشست هم دست ازن ببین به زیگه خود آب بریزم احسابم راحت شد خیلی که من که اینجا کار نمی کنم نقشش دو سرم داشته باشم یه نقشه؟ فکر خوبیه تو منه میبری جلوی نقشه آمانم جای خانوادم را پیدا می کنم خیلی خوب اگه ببرمت پیش خانواده چی به هم میدین؟ آه چیز زیادی ندارم چطور این برچزبو بهت بدم ها؟ آخه چونگ فکر خوب بیایه اونم من, من بهش گفتم پدر مادرشو فراموش کنه بهش گفتم میدونی تاخیرش کردم من اینو بهش گفتم آره گفتم که بلد نیستی آره دوری هم رفت رو صحته آب و بعد شبم خیلی خب و... نمیخوام کل داستانو بشنام فقط میخوام یه قسمتشو بدونم چون اگه اینو گفته باشم منظورم بعدی نداشتم داشتم واسش تعریف میکردم چون بهش گفتم واتساپ و گفتم فقط همینا بلدی و, و... و میدونی واقعا تقصیر منه آ ما شاخ سی ده منه تو سدنشو بردنش به جایی که نمیدونیم کجاست اسم اونجا چی بود اگه رستوران باشه چی اگه هارد باشه چی ای شبات تا خفه شید میخوای بخوابید آره مثلا خوابیدیم و داشتم این خواب خوب میدید خواب خودمو خودتو میدید که روی سنگه دراز کشیدید او چه حالیه انگار تو چش نگاهی ما ببخشید نه نه نه هیلا ترجیحی هستن چه کارش وحشی هستن که هر کسی میتونن به حمله بکنن و میدی یوه زیاد وحشی به نظر نمیان. خب حرکاتشون یکم گول زننده است. برو پشت منو بذار من حرف بزنم و واشون طرفش اپ. ببخشید. ما نگران دوستمون هستیم. ببینم اینجاها رستوران هست؟ لفی، اینجا رستوران نیست. حال دوستت هم خوبه. راستی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 اونجا یه محسسه حمایت حیات عبزیانه نگین خلیج مروی کالیفورنیا راست میگفت به نظر میاد غیر از فراموش کردن کار دیگه ایم بلده ممنونم نما ممنونم که گفتی حالا چطوره باید واردش بشید؟ درست نفتم میخواد برود اون داخل؟ باید بریم دوستمون اون توه تنها و نامیده ترسیده و نمیدونه که باید چی کار کنه او؟, او. ما یه راهی بلدی واقعا نمیدونم هرچی از از ملنگی شنید رسیدیم شش. هنگ خیلی خوشحالم تو رو پیده کردم این کار سرنوشته ازار بار بهت گفتم ربطی نداره قابlandı صحنه‌ویشتو گفتم ببخشید خیلی عجله دارم قرار خونه بودم ببینم خیلی وقت یعنی نمی‌دونم چن وقت چن می‌دونی من قاعده ازو مشکل از اون... کوتا مدت داری اینقدر تافلاسن من صحبت مباحثه بحث آزاد دوست دارم ای میگی چطوری خب من خوبم تو چطوری منم خوبم آها من خوبم تو چطوری اینه مالش خوب نیست نگاه کن یه نقشه شت. تو اون نقشه رو میخونی و جای خونه بودات رو پیدا می‌کنی منم برمیگردم کلیفلند فهمیدی آ فهمیدم اولیشه بورد دیگه میگی چی واختابوسه دوباره فرار کرده ای ببین چه خفت نمایشگاه است واقعا چطوری یه روز این پارک رو بازدید میکنن یه چیزی انتخاب آ... آ... گوشه آ... دم... من به همه گفته بودم چهار چشمی مراقبش باشن قرار بود امروز به اقیانوس برش گردونیم هیچکس ندیدتش آ باشه من خودم پیگیری میکنم اوه دوخ چلوجا بودی باشه باشه باشه با غاف شروع میشه قسمت بچه ها قسمت بچه ها نه نه نه, نه, نه. بچه ها, ها همه چی رو برمیدارن من نمیخوام به خاطر تو یکی دیگه از پا ها قد شده پس هش با نیستی هفبایی شادم یادم نمیاده ولی نش مردم بلدم بچه ها باشه باشه سفر به هی نگاه کن صدف من صدف دوست دارم <تصفيق> <تصفيق> ببو نگاه کنجا صدف میگه حالیه داری یه کی دیگه پیدا آه. کردی؟ البته عزیزم واقعاً کارت عالی بود دوری. یه <تصفح> بو دیگه گنگنده صدف می‌خوایم. صدف دوست دارم. آره آره عزیزم. من خیلی دوسشون دارم. <تصفح> میدونم عزیزم. فکر می‌کنی بتونی برام یه صدف دیگه پیدا کنی؟ بنفشوشو خیلی دوست دارم. <تصفح> باشمونی. <تصفح> مامان صدفه برفش صدفه برفش هنگ خونم صدفه برفش, برفش داره چه چی؟ شما می نماش گوه اینجا صدفه برفش داره کنه نموته بجلیسی الان یادش رفتادم اون صدفه برفش دوستانش توشی مرواری داشت که بابا براش میخواد خانی الان اه... وقت خاطرات خانمانگی نیست عموزم فکر میکنی این صدفه بشت با کمکت خونم بادم و پیدا کنم آه <تصفيق> پایگاه اصلی من کارول هستم فکر می‌کنم اون هشت پای فراری رو پیدا کرده باشم دیدی چیکار کردی سرمن از این بدتر نمیشه سرنوش سرنوش هی لطفاً خفه شو فکر کنم باید بریم توی ساتر چی خفه شو سرنوش سرنوش خودشی نه نه نه نه نه باید بریم تو اون ساتر من با تو وارد اون ساتر نمیشم من باید برم اون ساتر باید نه. برم اونجا هی سلام ماکرو هستم مالی خوره‌بادام می‌گردم فیکر خوبیه، ورده بازی. آخ. اممم، من واسهش یه یت فیلت بزنم. چطوری این همه چشماتونو باز نگه می‌دارید؟ یا. یا. یا. مردو. هی بچه. آ، اسب قرب بی بیام. آ. مهمون بعدیمون مدت خیلی زیادیه که اینجاست. یه نهنگ کوسه اسمش دستنیه. سر نمیش؟ واقعا؟ توجه کنید که مشکل نستیک بینی داره و تو طبیعت نمیتونه استراحتشو پیدا کنه. اوه ببینین داره میاد. سر نمیش؟ تو ماهی؟ اوه بایسا ببینم فیل. سلام چطوری؟ میتونی کمکم کنی؟ اوه, اوه. اوه. اوه منم بهت میام. ببخشید آه. سلام آه. کیه؟ این هوباب آبی داره حرف میزنه میتونی کمکم کنی خونوادم و گم کردم آه تو گم شدید دستانش طولانیه بیشترشم یادم نیست آه چه باد بی چرا آه شرمنده شناگره خوبی نیستم درست نمیبینم رستش عالی شنا میکنی قبلنم همچین شنایی ندینه بودم آه ممنون بودم. خواهش بکرم مم. ویسا دوباره بگو آمد خوش می گلم دوری بله vale. دوری بله دوری بله vale. آه بلید. دوری منو تو دوستیم. جا. دوری من آمدسینی. من میشناسم با چهختی با چه بودیم ما سلوله با هم حرف می زدیم دوستان لوله‌ای بودیم. راست میگی. آه چه روزگاری. پس میدونی من اهل کجا؟ آری آه تو اهل نمایگاه اقیانوسه. آه, آه من اهل اقیانوس آبادم. آزاد پس خونه بودم اونجا. میاد بریم. میتونه منو ببری آه آه اونجا. دوری کجا بجای نهنگا اینجا سخت. میشه سکوت رعایت کنید. سرسام گرفتیم دوستان. اون کیه؟ همسایه‌م. معذرت شو آب برداشت. پسر من در حرف می زنی میکنه نمیتونه از مکانیاب یه تبیش استفاده کنه. دارم ولی من میبینم دکتر آرش دیدم. تمامه حرفا رو درم میشنوام ما. مکانیاب یه تبیع چی؟ کلی میتونه از تو سرش م... سیگنال بفرسته و پژواک این سیگنال اجسام خیلی دورو پیدا میکنه. ولی جدیدا کاری ازش بر نمیاد. فهمیدم که حرفا در مورد منه. واقعا دیگه نمیتونن با پژواک مکانیاب کاردار بکنن. یهو شو نکن، هوصلشو ندارم. یهو ضربه شدید خورد تو کلم. ببین چه جوری برام چنده. کله باید گلبه باشه چون تو نهنگم باری ماخانیابی او مثل قبیسرین آینه که دنیا چی آینه که دریایی مثلا میگی اوه و یه چیزایی می‌بینی از کجا می‌دونستی وای <تصفح> <تصفح> خرجاله <خیلی> بودی <تصفح> ها پس اینجای. حد حد تو اینجایی من تو تصفیه حساب نکردی ما من بردم دمه نقشه حال ورچه است و ما بگی <تصفح> نه نه سب کل میدونم خونه بادم کجان اون آبایی اسمش چی بود اقیانوس آباد بود اقیانوس آزاد, ازاد. آره اقیانوس آزاد اقیانوس آزاد, آزاد؟ میدونم کجاست همونجا کنار نمویشگاه اصلا بی من چه محتب باش اگه میخوای بری به قسمت اقیانوس آزاد از لوله ها استفاده کن آنی از تو لوله ها آره دوتا چپ و بعد مستقیم خیلی پیچیده شد تو همش رو فهمیدی هنگ آه. یادت مود؟ آره حالیه بزن بری آه آه من با حد نمیام جا نمیشم باید تنها بری آه میدونی چیه منه نمیتونم چون آدرس اصلا یادم نمیمونه آه چه برمامله مامل است خانوادتو میخوایی باید بری اینتون آه. حالا برچس بوده ولی هنگ تنهایی نمیتونم برم سلوله ها یادم میره کجا اصلاً برم اصلا به من مربوط نیست برچس تنهایی نمیتونم برم خب متاسفم ولی راه دیگه ای نیست راه دیگه ای نیست اما اه هی شو راه دیگه ای نیست بابا من اصلاً ارادی نداره آخه انجام تمام کارا که راحت نیست مگه اینطور نیست چارلی آره ها آره مادرت راست میگه وقتی کار خیلی سخته دورش باید رهاش کنیم چارلی شوخی بود سر به سرت گذاشتم شوخی بود خب چون می با صدای خنده عزیزا. میشه خداوقت دیدی دل بنده همیشه راه دیگه ای هست مامینا بابایی ای زت مام دینام بابا نه بابام گفته همیشه راه دیگه هست چی راه دیگه ای نیست اوقیانوس آزاد اوقیانوس آزاد اوقیانوس آزاد, آزاد. حتمی دارم توی اون ساختمون اونجا غیبهش کردن شرم بر شما شده چی می تنیشه راهی هست ها اونو هاش بچا ها دنبال من بیای میدونم چطوری باید بریم اوقیانوس بابا اوقیانوس آزاد اون یه چیز ب... بچا بچه‌ها می‌دونید که من نمی‌تونم بیام اونجا بچه‌ها ببینید آها هنوزم میز نام شرطی می‌خواد ما رو ببره داخل چیکار درست می‌کنید شما چرا این کولید در واقع اشارهش می‌کنید شما چه‌طور می‌کنید رفقا ما به کی آشنا بشید پرواز؟ نه نه نه نه نه, نه. مسیر این کار بسیار اشتباهه ازش تشارکه کنید و ردش کنید بره شما خیلی زحمت کشیدید یه رایی پیدا کنید که یه جورایی به آب مربوط بشه میدونید چون ما به هر حال شناگرهی خیلی قابلی هستیم تا پرواز کننده هایی خیلی خوبی هستیم ببین دوستتون باید تو قرانتینه باشه مایه های مریض رو میبرن اونجا تناراه دستسیب E e, faleminderit Basku nazisëm, imzaj më jep. Çe nuk dish ta, baba. بی <تصفيق> کیخانو این ماهیای ناس باش فرنگ قرنطینه <تصفيق> آره آصه کارا خا ته خندم <تصفيق> علی تا کی زبونتونو میفهمه درست اخ اصلا میفهمه من دارم چی میگم زبونت باید باش ارتباط روحی برقرار کنی ارتباط روحی صاف تو چشاش نگاه کنو بگو الله حجات خوشش میاد حالا تو چشاش نگاه کنه دست بزن تو دستش آره نه نمو باید یه نقشه دیگه بکشیم یا باید توی آب بمونیم یا با این بریم این پرنده میدونی پرنده مال این حرفا نیست به درده میخوره به درده نمیخوره باشه بابا تا موقع دوری همارا فراموش میکنه خودت گفتی فقط همینو بلدیم باشه آه آه خوب صاف تو چشش باید نگاه کنم خب ببینم کدونه کی چشش یکی چشش که خاک رو فقر نمیکنه بکی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 آفرین پسر بیار شطل رو لومبرو تکون بده تو میتونه تکون بده آفرین پسر باباشه <تصفح> خیلی عزت ممنونم جرالده به خونه آمدت خوشی آمده قلمب خیلی راهدی نه بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله بله ما این دیوونگیه ما نباید از اولین نقشه رو میچشدیم پایش میکنم رهابون کنم ببینیم وقتی بهت گفتم باید میدونم باید پایش بیشون علامت میدیم هنوز نه هنوزم نه حالا؟ نه سرنویش باید علامت بده یه چیزی میدونیم اصلا نمیفهمم چرا این کارو میکنیم منظورت چیه؟ چرا اینقدر دردسر می‌کشی که چنت مایه دیگه رو پیدا کنی؟ اگه من مشکل حافظه داشتم همین چیو فراموش می‌کردم و می‌رفتم صفاییتی. خب من اینو نمی‌خوام، من خونه خودم رو می‌خوام. من نه بچه‌ای، دوست ندارم نگران کسی باشم. خوشبختی خاطر مادری نداره. مشکلی هم نداره. ها. نه خاطر اینا مشکلی. هنوزم باز نشده، مم. هنوز باز نیست. مم. لازم نیست هی بگی وقتش نیست، وقتی وقتشه دیگه شروع می‌کنیم، بذا بریم وایسا. دیگه شروع کنیم، ما میگیم وایسا. برا، برا، زد بس، زد بس، زد بس واقی اونجا رو برا، برا، برا، برا، برا، برا، برا ببین، یادت باشه دستینی گفت از روی الامت ها برید سمت نموشگای اخیانوس آزاد من چیزی نمیبینم ها پس تو باید پیداشون کنی، خب؟ گرفتم علامت رو تاقیونوس و آزاد دنبال می‌کنیم باید چکر روش کنم یادم نره علامت تاقیونوس و آزاد علامت تاقیونوس و آزاد پرستم‌طور از علامت تاقیونوس و آزاد علامت تاقیونوس و آزاد علامت تاقیونوس و آزاد شب خفت بیشه ای... مسیر خ Clintu انتخاب کنیم بخوزا Taliyah banda بستوش شایی که بچه ها ناماشن دوست نها رهم لمزا خواسم و پت نکن بپ عزیزم، بورید که نشون ببخشتم اینجا هزم دیگه رو رو بکی، حضرتون سیل عطفت واربوز واربوز حتما دارد ام بالا جایی برای این فرود میگرده توماقش مختل، لیل، ما حتما نمیدون الان کجا هست نوها، نوها باکی، نه آم، نه، نه از گره به چه کار می‌کنی، چه کار نمی‌کنی بکی رو رو رو یه جایی باید بریم ولی سؤال اینجاست که کجا؟ ای خدوم طرف علامتاری نگاه کن ببی ببینی یه چیزی که منو به خانوادم برسونه خانوادم قدرت ما داره اینه که دنیا میشناسنش از کجا میشناسنش؟ یه خاطر اتیکه هنگ باید اون طرفی بریم چپ برو چپ چپ چپ چپ, چپ. مکی ارو رو رو صدا تو نمیشته به بابا خیلی خب نقشه جدی باید بشت نصدیک بشیم تا صدا مونو خوب فکر کنم نباید که خون بخوری. یکی، تو این اون بدونه مامقوم. بابا بهش اعتماد کن. اعتماد کردم تو هممون رو فراموش کنه. آره؟ من بهش اعتماد دارم. بهش اعتماد داری؟ بکیر داره لیوانو میخوره. بکیر، بکیر جون. اوه بای. اوه. ام. دیگه چه؟ خب حداقل از شعر اون سطح خلاص شد. واو بای. الان باید بالای قرنطینه باشی. قضا دادن به سامورهای آبی کوچک الان داره شروع میشه حیلی خب ممنون سگرنی حالا کی میخواد این بچه ها رو ببینه خبت قوی ترین کنم که دنیا رو پیدا کنم ساموره اینیه جشن تولد بزرگه جشن تولد کجایی؟ دو... با اویانوس آزاد نزدیک شدی؟ آره نه نه نه نه نه نه نه نمیدونم یه علامت دیگه دیدم کدوم علامت؟ علامت قوی ترین اینه که دنیا چینی داری بل خور می کنی چرا این علمتو دوام کردی خب چون یادم اومد نه, نه نه برنامه این نبود آخ آخ آخ خاستم کردی در این وقتا متلف می کنیم فردا ماشین انتقال حرکت میکنه و میخوام توش باشم پس برچسبو بدیدی نه اون علامتو یادمه خب خب البته بیشتر و بیشتر داره یادم میاد یاد یعنی حافظم داره بهتر میشه باید... اینجوری نمیشه تو چی یادات نمیاد اصلا برای همینه که خانوادهتو گم کردی ها پیر خوب با وفادار خوب معذرت می خوام فقط اون برچسب رو بدید میدونی به عنوان موجودی که سه تا قلب داره زیادم مهربون نیست سه تا قلب منظوره چیه من که سه تا قلب ندارم چرا داری؟ ندارم داری ندارم داری تکرارش کن یکی قتی جالبیه هشت پاها سه تا قلب دارن دو تا شون خونشون رو به آب ششا میبره آه. آه. و سوم می خون رو به اعضای بدن میرسونه میدونی کس کی سه تا قلب داره نباید اینقد خودخواه باشه چون دارن قصه‌ای که دوست دارن هنگ دس نه اولش هی داره دس نیست دس هنگ اولش هی داره های دس دس اوه دس های های های های های های پارک ک کجا این پای تو میشه باقا کنه باید ببخشی دوستم فراکی تو جرمانه فراکی نم از من دوشتو یه هشت و نف نف و هفت و دف و آره هفت و هفت و دوزه یه دو سه چور پاشه هفت هفت اونجاست باید براید پنک پنک باید برید پنک ای وای چی کار داری میکنی؟ پنک برنامه چیه؟ برنامه بینید که تو آباد هم اینجا بمونه خب برنامه خوبیه منو ببخش هنگ درست یادم نمیاد که مراقب باش دل بمدم نگاه کن کجا میری حضر من زد میخوام بابایی ببخشید همه ایش یادم میره عزیز دلم برای چی شرمنده ای میدونی باید چی کار کنی؟ فقط باید شنا کنی فقط باید شنا کنی آه. حت میدارم یادت میمونه چون ما, ما میخواییم یه می شیر براش درست کنیم گوش کن فقط شونا کن فقط شونا کن فقط شونا کن فقط شونا کن فقط شونا کن ما چطور می‌کنیم شنا شنا شنا می‌گویند شنا شنا والدینم این شعر رو یادم دارم خونه با دیگه این شعر رو میخوندیم از اون موقع یادم موندی آره کدوم شعر؟ فقط شعر کن ما فقط باید شعر کنیم امکان نداره نبیبینی؟ تکون خوردن خطرناکه نه به من گوش کن میدونم ترسیدیم ولی نباید تسلیم بشید دابنم بیا فقط شعر کن فقط شعر کن ما منم این شعر رو یادم امت دارم, دارم.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 آه, آه, آه, آه شرمنده. تیرات نذره. چر کندی دیگه. لازم نیست شرمنده باشی. ای. او. هاچ. او. اوه هایچینجی. اوه وای. مارو نجات دادی. هه. پرستی. نجاتتون دادا؟ البتي اصلش اينه كي ما رو انداختي اين تو وري اگه اين جوري نميشود به اينجا نميرسيدين ماكونيا بي پيشواكي ماكونيا بي پيشواكي قويترين اينه كه دنيا پيداش كردم نه نه نه اونو پيدا كردين به اوقيانوس آزاد خوش اومديدين اوقيانوس آزادو رورو رورو رر رورو بابا بس کردن بر نمیگرده آها شاد برگرده رورو اش تقصیر خودت بود راست میگی تقصیر من بود ولی چاره دیگه ای نبود دلم براش تنگ شد منم همینطور برقم فستین. راستش او بخای منم خیلی نگرانش هست. در واقع اون باید نگران ما باشه. میدونی ای اگه اینجا بود حتما میدونست که چیکار باید بکنه. نمیدونم اونجا چه جوری سر میکنه. بکنه نمیدونه. فقط انجام میده. آره اون زیاد اهل فکر و اینا نیست فقط یه چیزی رو انجام میده. دوری چی کار می کند دوری بهاید چی کار می کرد آره دوری چی کار می کرد اول موقعی تو برسیم می کرد و اهمیتون رو ارزیابی می کرد انتخابه رو تحلیل می کرد این کار رو مالی می کرد درسته من این کار رو می کردم اون اصلا فکر نمی کرد اول این چیزو که می دید می د Luis A part of the main A的时候 Dorin Karanka. Ne më u maro mohkam beq, hop. U shkelan bahole. Ah, a ha hmm. mesela. <try> ha, <try> u shkelan. A u habi. Ah. ایم افاق شدی حالا داری چیکار می‌کردی داری دیگه چیکه‌ای وای پسر اون شما می‌بینمت خوشحالم منو می‌بینی منم خوشحالم شما رو می‌بینم چند ساله با کسی حرف نزدیم وای چند سال آه. وای متأسفانه زیاد نمی‌تونیم ما اینجا بمونیم بعد بریم چون خیلی‌ترین تازه مدین یه کم بمونید از خودتون بگید بگید دیگه ما خیلی دوست داریم ببینیم ولی من پسرام باید بریم قرنطینه خیلی کار داریم ها پسر داشتن خیلی خوبه آما صاحبخانه وقتی میگم یه مدت با مارماهی زندگی کردم. تو چی خاله؟ ولی مارماهی چشمه داشت وقتی ولی یه چیز متفاوت میگاش چون جوخی کردم انظیرام چشمه مارماهی نبود. چون روحتو میبینن و قلبت میشکنه ها ش علی چرا؟ دیرچی <تصفح> موقعیت بود چیکار میکرد؟ <تصفح> در کشف دنیای پر رمز و راز اقیانوس آزاد با ما همراه باشید. خب تو والا میگم ما تو لیوانی ما آره nda malet mia sakku uh. yee yeah. oohtopu se ta qalb dare ti bi ras kufteam yeah. uh. uh. بالاخره موفق شدیم. ساجی. خوبه. ویکونم تموم شد بچه‌ من باید به ماشین برسم. وایسا ببین، یه چیزی برات دارم. برچسب. برچسب. آره. ای. اه. واو، یالو می کوجان بیچس. فکونم تو رو یادم بمونه آو با اولین ذره اون قلبت فراموشم می‌کنی سه تا ذره اون بدونین ولی من فراموشت نمی‌کنه خونه و دامون پایینه ا ا خوبی امات ا آره فکرم هستی آه. آه. وای اونا کجا هستی؟ کجان کجان؟ خب خب آزر میخواب سلام یه مادر و پدر ندیدین بدون من؟ اگه بخشید یه زوج پیر مثل خودتون لذیدین مثل شما نه یعنی این پیرتر یعنی پیرتر از شما خب سلام سلام اگه سیو میشناسید که بچه‌شو گم کرده باشه خیلی وقت پیش که من باشم خیلی خب عجله دارید او جلوی تو نگاه کن معذرت این وظیفه ماست هر حیوانی که نجات می دیم و درمان می کنیم بلاخره باید به خونه اصلیش برگردیم صدف و این هم از این پس اگه یه وقت گم شدی داری؟ فقط صدف ها رو دنبال کن صدف دوست دارن <تصفيق> صدف ها رو دنبال کن آره آره عزیزم خونم اینجا خونمه ماما بابا خب دل بندم حالا تا ده بشمار یک دو سه چهار آه! شما کجا رفتین؟ ها کی داری عرف میزنی دل بندم با دو سلو داف به پنافش دوست داشت. اوه. یعنی چه بلایی سرش میاد؟ او اتفاقی نمیفته جنی. فای ماما کیه؟ اون باشه کیه نه؟ تک میکنی موافق شدی چارلی؟ عزیزم، اتفاقی نمیفته. یادم میونه که عاشق پناف دوست داشت. گوری گوری گوری گوری گوری خونه و تا من گمیشون کرد عکس الیمان بود. باز چسبو باشه است بیت افتاده یعنی تو تو قرنطینه نیستی قرنطینه آره همه ماهیای آبی رو بردن اونجا مگه نه بیل آره ماهیای آبی میرن به نواحیای خودشون تو کلیولند فردا اول صبح حرکت میکنن از بند هالبی چی نه نه نه من ولدن می قرنطینه برگشتن میرم به کلیولند ولی تازه رسیدم اینجا باید برم پیششون اونا خبر ندارن من اینجا نگران نباش رسیدن به اون قرنطینه خیلی راحته میتونی از اون لوله ها بری اوه، نمیتونم این کارو بکنم. چرا؟ یادم میره کجا باید برم. هر وقتی کسی پیشم نباشه نمیتونم جایی برام. ها، بازار کجا مونده گارینا؟ توری بعدترش می‌کنی. اگه می‌خوای پیداشون کنی باید بری اون تو چیزی نمیشه. وای نه. میتونید بگید چطوری برم اونجا از تلوله‌ها؟ حتماً عزیزم، دو تا چاب بعد راست. خیلی راحت.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 ا ا شب کن رفتم چپ وای نه دوباره دوباره خب شب کن وای شب وای شب وای شب خودم ور بودم کجا دارم میرم یادم نمیاد گم شدم خیلی خیلی سخبوت یادم نمیاد خیلی خب باشه باشه همش یادم میاد حواشم یادم میاد یادم میاد یادم میاد. میاد تا عبد توی لوله ها گم بشه لوله دوست لولی همینطوری شنا کن بالا بالا بالا آه نمیدونم کجا میرم اعتماد کن نمیذارم به چیزی بخوره دیوار اوه این دیگه چه وازشی هیچ‌وقت یاد نمی‌گیرم. چرا یاد می‌گیری؟ اگه یاد نگیری تو اقیانوس می‌خوای چیکار کنی؟ عین زدل من تمرکز کن باشه دیوار. اوه دوری درود با تو. اگه اهمی شدم. فال دینام درو موناقل می‌شم. حساب کن دری بلیتو باید از مکانیاب یابی طبیعی دستفاده کنی. تو چه میدونه خرابه. حساب کن بلی آه... سایکن هم اون طرف که دوری گفت. ولی من نام نمی‌دونم که آه... میلی.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 اینجاییم نگران نباش بچه چی شده چه اتفاقی افتاده یه چیزه دارم میبینم او ایناش او آره دارم قرارتینه رو میبینم واقعا که آلیه دارم همه چی رو میبینم پیدا کردارم دارم میبینمت زندگی زیباست من رو میبینی چه حرفایی میزدم اون که من رو نمیبینه باشه بهش بگو میگه برو به چپ جب مستقیم مستقیم حالا راست راست مستقیم وایسا یه چیزی نبیرم بذار تصویر دراشش کنم وای خدای پناه بر تو اون تنها نیست ملوی نیست برای دارم یه سمتش نه نه دوری شنا کن بارگرده آقا مستقیم راست راست راست آه نه بابا راست من بایی نداره ساخت میره سمتش آه نه دون ایدار بزن درسته داری ایداری میار به سمت ما بچه برد راست نه, نه راست خدایی من نمیتونم آه, آه, آه اوه دراز هم زدم می خورادش حالا چرا رفتی چرا بازی غرورا مشو چونی من پیدات کردم یا صداقت می‌قول بود که همش حرف می‌زاد بعد اونجا ما متوجه جلوس چیم شدیم و افتادیم تو این لوله ها بچاستا چرا شو رو کردی داری می‌خوری ایای صداش چی بود ها حساب کنید تو یه جواب بدم تو ریلی زبخش جایشی تولیت خره خوردین نه مرو هی دیگه شنیدم تو ریته برون نه هنگره بلده بله شنیدم به خاطرات خیلی بدی رو به یاد من آور زود باشین بعد از اینجا فرار کنیم بزنیم به شاک دنبال من بیایین از این طرف بدوید زود باشین از دستم صاف کنید ام آخونه وادم اینجوری راسته؟ آخونه وادت پیدا کردی؟ خب دقیقاً نه یعنی هنوز نه ولی میدونم کجاست دقیقاً میدونم چطوری باید بریم اونجا ولی کمک میخوام. دوری تو باید بری به قرانطینه. قرانطینه درسته. بعد با یه حف باشنا شدم یکم عصب نداش ولی غالبا مهربان بود. اون منو برد سمته نمایشگاه. نمایشگاه. دوری فکر میکنید خانواده‌ام میخوان منو ببینن؟ چی؟, چی؟ چرا نخوان ببیننت؟ چون آ، گمیشون کردم. دوری. اون وفاتت پس صبرانه منتظرن که تو رو ببیننت. دلشون برای همه چی تنگ شده، حتی خنگولیت. واقعاً؟ دوری. میدونین چطوری پیدات کردن؟ به صدف یا نه، به صدف دو تیکه آه نعم، تم بود. فالزون نمی‌دونه. نه، عک می‌دونی در واقع ما عین خرطو گلگی کرده بودیم تا بالاخره نمدر آمد گفت که دوری چیکار می‌کرد؟ چرا اینا گفت؟ چون از وقتی که تو رو دیدم کاری کردی به یه کاره‌ای دست بزنم که رویای انجامش رو می‌دیدم. کارای دیوونه کننده. رو در راهی چه می‌دونم با کوسه ها و عروس دریایی و پداکردن تا پسرام. تو تمام اینها رو رؤیاها رو به واقعیت تبدیل کردی، داره. واقعا نمیدونستم این طور فکر میکنیم حتما فراموش کردم نه تو فراموش نکردی من هرگز بد نگفتم و بابتش بسیار متصف هستم ولی داری حق تو خیلی بیشتر از این حرف هست تو باید خانه اونده تو پیدا کنی و وقتی پیداشون کردی دیگه تو خونت هستی پدر مله یعنی باید با دوری خدافزی کنیم احتمالا بله نما بله اتمن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 شیتری ببخشید ببخشید ببخشید ببخشید ببخشید تورا سرام میو مامانم سرام میو مامانم این چه دیوونه این چیه اینو سوگ اه صدا یه 4 5 تا پا میشنا ندارم کی هنگ هنگ بریم تون تونگ تنگ کجا اشیر گفته کنواده شون جان ببینیم سه دقیقه وقت داری همه رو بیاری تو لیوان بعدش من با اون ماشین میرم کلیب لده کرفتیم <تصفيق> <تصفيق> کاملا وای خدا آه <تصفيق> منم دوری دوری؟ دوری؟ اون دوری, دوری بکشه مامان، بابا دوری, دوری, دوری بکشه مامان، بابا دور دوری بگه بگه کیا مامان، بابا دوری باید دوتار دو انتخاب کنه وردگی بریم خیلی خوابا با ما شخی کردم آقا همه شون این همه بیرفتم مامان، بابا خونه بادم کجا؟ دوری؟ واقعا دختر جنی و چارلی هستی؟ بله، منم، خودمم اون کجا؟ خب ددی، منم پدیده شدم، نت فکر کردن تو تو از اینجا سر در میاری، تو قرنطینه. ها خب. این زود پشپیچ میگی. و اومدن اینجا که دو بالد بگردن. از اینجا کجا؟ دوری. چند سال گذشته. اونها دیگه برنگشتن. وای نه. ها. ببین دوری. وقتی ماهیو از قرانتینه بر نگردن این یعنی این که اونا چی؟ داری اونا دیگه رفتن اونا مردن اونا خیلی دنبالت گشتن مطمئنی رفتن آره دیگه پیش میراد اونا خیلی دست دست دوست داشتن داری ماشین داری میره کلیفتن آخرین هش داره داری نراحت نباش اونا خوبی. خیلی دنبالت گشتن خیلی دیر کردم. نه، داری، دوری حال خدا. دیگه خونه واد نداره. دوری این حقیقت نداره. بابا وقت رفتنه. دیگه تنها دا شدم. گاد! داری.. پس باقیه کجان؟ بابا oh وقتی شاد گره میرن تونی بلن. اوکتوپوس رو پیدا کردم. کجاست؟ <إ seule> <Dat> <longtemps> اوه نانا نانا کومای کومای کمک کنید کومکم کنید تو رو خدای یکی کمکم کنه اوه، اوه، چو، کوماکوم گم شده. اوه، منم گم شدم. ماما، ماما، بابا، من، من، من. دیگه اساسا من, من نمی‌تونم کمکت کنم. تو کی کوماکم کنی؟ من گم شدم. ماما، پاما، اونا، اونا. اون یه چیزی که دانالملکی رو نجات بدن. اونا رفتن، رفتن. همو را دست داد. آقا، که کاری نمی‌تون بکنم. یه چیزی رو یادم رفته. کوماج، کوماج. چی کار کنم، کاری نمیتونم بکنم یه چیز رو یادم رفت داره ولی چی بود؟ یه چیزی، یه چیز مبهم مهم بود، مهم ولی چی، چی بود داره دور میشه بشه یادم میره یادم میره، میره، میره فقط همینو بلدم کارم همینه چی کار کنم؟ چی کار کنم؟ چی کار کنم داری چی کار میکرد من اطراف رو نگاه میکردم اونجا که آبه خب حالا اینجا آب اونجا هم آبه باید بیشتر به اطرافم نگاه کنم آه بتره برم آه یکم هم الف اینجاست الف بهتره خب حالا چی کار کنم این این الف هم که شبیه همه همشون شبیه هم غیر از اون سنگه که اونجاست خب بهتره برم این طرف شوش ابيها ما نه شين شين دوست دارم شينو نرمن يجوري به اي جاي ني مي رسام هيچ چيني نيست هيچ غير از الف الف و يكم صدا صدا صعب بي بينه بي بابا تو دیگه نمیذارم از محجور بشی خدای من دیگه نمیذارم از محجور بشی خودمون کردی شو خدای من شما بزرگ شدید از شدی تو بابا تو باختی دیگه نمیذارم از محجور بشی ما یوبه نه خیلی متا هستی حسنین حرفو نزن نه نه نه نه دیگه بندا مشکل دارم خیلی متاسفم تمام این مدت زی کردم درستش آه. کنم درست. درست. زی کردم نشد این پراموش کردم افقارم تغییر می کردن دوری فرمشد. دوری عزیزم تو اصلا نباید متاسف باشی ببین ببین چی کار کردی چی کار تو مارو پیدا کردی درسته تو مارو پیدا کردی حسیسم فکر می‌کنی چرا این همه سال یک جا موندیم چون می‌دونستیم یه روزی دوباره ما رو پیدا می‌کنی تو فوق العاده‌ای دقیقاً ولی فکر می‌کردم رفتی چج چطور ما به قرنطینه رفتیم که دنبالت بگردیم ولی تو اونجا نبودی فهمیدیم حتما از طریق لوله رفتی بیرون از لوله ها درسته درسته ام. عزیزم مام همین کارو کردیم و از اون موقع ما همینجا موندیم تا تو رو ببینیم چون فکر می‌کردیم ممکنه یه روز برگردی هر روز می‌رفتیم بیرون و صداف می‌ذاشتی و تو پیدامون کردی آه عزیزم پیدامون کردی چون یادت اومد و با روش دوریگونه قشنگت تونستی ما رو بیاد بیاری عزیزم آره خودم تنهایی آه واقعا عزیزم <تصفيق> یعنی تو تمام این سالها تنها بودی دل بندم آه دختر عزیزم آه خب تنهایی تنهایی که ن... نه <تصفيق> آه مالی نمو کسی ندید دوری کن شرفت؟ نه. نه واقعا این همه چشمی چی ندیدن یعنی؟ آه ببخشید آه. میشه کمکمون کنید کمک, کمک واسه تیزی حبس بابا نگاه کن دور دیه خدا رو شکر دیدی نمو میدونه سمیه راهی چی؟ ه... هی دوری کجاست؟ آباد تو هم کجاست؟ متاسفم میدونی من سعی خودمو کردم اما نه چی؟ خیلی خوب هر کس می‌کنی بعدش نه این گور سه بود داد. من زبونش رو بلدم راستش مالی زنگ می‌دادن میومد نگاه کنه من با این حال من همیشه بهش اعتماد دارم نمی‌دونم چرا ندیده به از مالی خوشم می‌آد نمی‌دونم چطور این امو مار پیدا کرد یا اون منو پیدا کرد نمی‌دونم ولی نما خیلی گله هیچ وقت منو تنها نمی‌ذاره ها توری چیکار می‌کنه توری چیکار می‌کنه حتماً باید ازش تشکر کنم خلاص از اینجا بریم ها بویسی منی دارم می‌شنسم سلام من سیگورنی بیویر هستم راهش می کنم به محبه پیوان داشت اینجا مؤسس نجا تابضیحاییم درسته تو از اینجا شروع کردیم تو بطفایی نیره فیقا کنچان آره تو یه چیزی گیر کردم که می خواستیم یه جایی بره کامیون آه، کامیون ها آره درست کفتم کامیون آه. یعنی دیگه نمیبینم اشون نه نه نه داری چی کار میکرد داری چی کار میکرد میدونم دوستایی خوبه هستن آه. ولی کامیون آه. دست نیافتنیه سری کن این رو بفهمی مادر درست آه. میگه داری, داری. خدا میدونم اگه از دستشون بدم دیگه از هست... دستم میرن این رو قبلنم بهتون گفتم ام... داری مامان مارلین و نما بیشتر از یه دوست خوبند اونا خانواده من باید برشون گردونم پیدا کردنشون کار سرنوش بود میدونید سرنوش انگلیسی چی میشه دستینی دستینی دستینی دستینی دیبار آتوری. ببخشید دیباره کور بود ندیده دستینی دیباره یه چیزی شده بهداش کردم بیرون محسس آنه موازمش دیباره یه کاری داریم چی؟ دستینیه داری؟ کامیون حمله دوست داره میاد داری؟ دو تا کون啊 خنه فاضری داری؟ داری؟, داری یک دو می‌تونم از دیوار رد بشم دستینی، من قوی‌ترین اینک دنیا رو دارم، فهمیدهی؟ تو قوی‌ترین اینک دنیا رو داری؟ تو خودم چشاد می‌شم آه، چشمان من می‌شی، آه، ولی، ولی دیوارم تو، یه روز هیچ دیواری نیست، بفهم دیواری نیست؟ این سرنوشته دستینی این سرنوشته دستینی. دستینی چی که آفرین می‌کنی؟ نه دستینی، واکسه سم کن، سم کن، دیوار آه، <تصح> آ سلام کنید جاری این ها بابا یه آبی والده ای نتان این خودی سن سلام بنده بیلی هستم خانمه داریم خیلیشون داری؟ ترم فقط جنیز ادام کنید خب خب باید بریم باید جلوی کامیون رو بگیریم آه. خب کدوم کامیون بیلی گذارش وضعیت چشم الان انجام میشه پیداش کردم کامیون داره میره جونو با سریق بزرگ رو. را را میافتید باید کامیون رو متوقف کنید سعنه رو باید میدید آره موفقه آقا بایی پشتر باید هجار هنگید باشه کلال دا او سرکه بوله هر دردید بهش آدت نکن جرالد جون مشکل داره الکی شاد میزنه بلی همه چی یادم رفت من رو در جریال بزن رو چشم دو سطن هست تو کامیونم دارن میرن جونم سمت پل کلی سموره آبیه باوزه اونجاست سفیز رنگ خیر آقا وای او کامیونه دیدمونو شش در این حالت چطور بهشون برسیم بابا کاش میشد ماشینارو نگذاشت ماشینا ماشینا ماشینارو نگه‌می‌داریم همه باید وایسن براتون برای تماشا وای میستان چیزی ها که دوست دارم نگاه می‌کنم شده خیلی خوب الان یادم اومد درست وقتی ماشین رسید روی پول تو منو پارت میکنی اون بالا باشه باشه شما دومارم بیایید بقیه همیجا بمونید دوری عزیزم و ایرسا تو دوباره نمیتونی ترکمون کنی مادرت راست میگه باید پیشمون بمونی دوری عزیزم اگه بازم برای یه مدت طولانی بری ممکنه ماما. بازم قاطی کنی و ماما. بعد دیگه نتونی میدونی دوباره گمه تون کنم بله ماما بابا مشکلی پیش نمیاد چون میدونم اگه باستم یادم بره بازم پیدتون میکن اوه یکم دیگه مونده او یکم اون ورتر خواب خودشه هنوز نه نه چیزه حالا حالا زود زود زود باش وقتین نقششه کدا نقششه او جا خب خب چیکار کنیم چیکار کنم ماشینlara geldi maşınlara bayat vaysan gelin maşınları bigerin ham digerine bagal kani bagal kani آنجا را وای اونا چقدر بامزدن <عوبش> چی شد یه آه.. ها بابا نمیدونم جریان چیه ولی این تکونهای ناگهانی قطعا یه ارتباطی با همدیگه دارن نمو داری آخه. آخه دی داری آخ تو دیوونه ای داری داری امید. آه منم همینطور ولی هرچه قصه ای کردم نتونستم فراموشتون کنم فکر کنم هی خونوادم و گم می کنم ها. خونوادت؟ امه. می دونی چه حسی داره؟ بله می دونم دقیقا چه حسی داره اخی اخی زود بشید بپرید با این این ماهی ها نیستن با این ها اونا باید ما رو می بردن دوری ماشینا دارن را می افتاد نووو پس فرتدش بمون میتونم آره او رو رو رو رو بکی بکی بیا اینجا به کمکت نیاز دارم بکی بیا اینجا آ دوري دومولم بیا روتخونه ننه ننه ننه ها بصا 12 jogo گذاشتیم ای ابله خیک کله‌خورد بیا برگردیم برگرد بکی او رو رو آ جورو شما کی هستین جنی مارلین نمو آه به خاطر دوری بهتون مدیونم دوری هنوز تو کامیونه اونجا بکی دوری رو ورداره بیار ارو ارو ارو دوره دیگه آه. آه. خب بچه گمونم وقتی خداها بگیر نخیر بدی. منظوره چه نخیر نیسو نمیری کلیولن با من به آقیانوس می آی چرا همش باید نخچه هایی من رو خراب کنی گوش کن ببینم من یه هدف تو زندگیم دارم فقط بکش کن. Yeah. فایده نقشه کشیدن چیه؟ من هیچ وقت نقشه نداشتم. نقشه داشتم خونه ورم از دست بدم؟ نه. نقشه کشیدم مارلینو پیدا کنم؟ نه. سبکون ببینم قبلنم گفت تموم شد خب شاید کشیده بودم تموم اینا برای اینه که بهترین اتفاقای شانسکی میفتن زندگی همینه و من و تو باید بریم اقیانوز نه توی آکفاریوم مسخره میتونم یه شو بگم هر فاق تموم نشده یکی از دوستان به نام سگرنی گفت همش سه مرحل هست نجات درمان و یه چیز دیگه هم گفت هم نه یادم نمیاد چی گفت آزدگ <تصفيق>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 سنگی میکنن در باز کنن از بیرون گفت شده دو داشتونی ایتا میتونی دستینی دستینی دستینی دستینی دیب دیب دیب داری داری داری داری داری داری میلی اونا کجا میرن آنتن نمیده متاسبانه داری تموم شد ما اینجا گیر افتدیم نه. باید یه راه دیگه ایم باشه ای گوش کن داری هی راه فراری نیست یه راهی باید باشه همیشه هست نیست داری دارم بهت چی میگم میگم این دفعه دیگه راه فراری نیست خب اون چه جوره ای داد یه راهی دیگه هست یه نفس عمیق بکش بچه آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی آزادی پته دادا سپیرو چی بود حالا بیرون بمونید. آخو پنگ تو هفت تا دست داری نمیدونم یه کاری بکن. الان یه کاری میکنم کارشو بکدم. ها؟ نه نه نه. بابا اصلاً کرونا خدا. حالا یه کاری کردم افتادی ما فریم پنگ. بایس بایس. بایس. ما داشتم بهت میگم چه جوری درآمدگی میکنی ولی باشا، میدونم باشا. که میتونی سرت. بایس. چه داریم با... میریم؟ بابا من هیچ چرا رو نمی بیرم، یه آدرس، یه چیزی به همه دیم همه ما اشینا دارن میرن چم، پس ما رو به چم خب خیاب برم برم به گیلمن. خیابون گیلمند، خیابون عشبید آه بازم خیابون گیلمند خب چرا بازم، هی میبیرمش؟ که باید برام سمتی جم حیف نداره، اگه بفهمیم چطوری اومدیم، از همون رو بر میگردیم دفتی فهمیدیر خبرم شدم نمید از کجا اومدیم هی من او آدماره میشنستم از همون جا اومدیم این خوبیم از اینگه های های های های های باشه باشه باشه باشه های هم اشراد شدیم مستقیم مستقیم جب جب نه نه نه راست راست برو راست نره نگید خیلی خوبه های کشماتو به دوست می جاتی کنو برد اخیان میشه اوغیره زنگ یه قایق یه ورسره خرد به یه قایق فنی قایق امیران جواب آره راست راست. رفتم روز بچگی حالا خود عمر به پیشم خب باشه الان پیداش میکنم نمیدونم ولی یه چیزی میشه یه چیزی بسته فوق دریا هر عمره در بالکونی اوغیان اون سانف چاکن پایک سوکن تو در آنتن میده خودشونن نوزارو براه نه نه نه, نه،, نه، بایستن گیر افتادن خیلی خب درسته آقیانوس درست شلامونه مستقیم آه. بارم این شد یه چیزی آه آه. چرا؟ آمه چی, قرم، چی, قرم، چی قرم؟ کار کنم چی کار کنم چی کار کنم هنک یه کار دیوان وار ازت میخواه هنک با دیوانگی مشکلی نرم خب هنگ رای فرار ندارن کارشم ازند را ماهیه میکشه سوکون فائنه فرار طرید رون راید روز طریق فاروز ف Host's پس ن recur فاره خون و بود و کندن راید Midenit, se I see friends shaking hands say how deep I see trees and green Risks A sske parece Së gjith Mullers As nj.qa I see men Nagës d וא� A ang SBS Nj.qa ما را sozinho لا باتالفو بو مان سگورنی ویویر هستاس از اینکه با من همراه بودید تشکر می‌کنم یک دو سه چهار آه ام وایس ابیبی نم چه رد اشتم میش مردم هی hey, کجا رفتید یعنی ترکم کردن نه نه نه نه نه نه این کارو نمیکنن باشه یه کاریش میکنم داشتم چیکار میکردم داشتم چشممو گرفته بودم سعی میکردم قایم بشم چهجوری میخواستم قایم بشم اوه 5 6 7 8 9 10 حضرت یا نه دارم میام پیداتون <تصفح> کردم یوه ها، چی شد؟ پیشریو بازی تموم شد. شای وای من. خب، پیدا نکردی. اینو باشید. الان وقت یه درس دیگه است. آقای میکی از واجرات ور می‌گرده؟ اگه زرنگ باشه تا می‌تونه از اینجا دوری می‌کنه ولی تا برگرده من معلمم. خب، چی می‌خواد در مورد مکانی بیا طبیب دوناست؟ این کی میخواد بدونی؟ خوب دل بندهام خوش بگذره. برای شن روز خوبیه نه؟ باشه خدافس مامان خدافس بابا. تو فکر کنم باید برم خونه و به باغچه خودم برسم ببینم تو با من میای یا نه ندارم میرم لبه صخره. باشه برو لبه صخره. چی؟ کجا داری میری لبه صخره؟ تو خودت میذونی که اونجا خطرناکه لطفاً در فکر خوبی نیست. آره گفتم برم از منظرش لذت ببرم بای بای. باش منظره آخ خیلی خوب بریم منظرش رو لذت ببر ولی جای دوری نری آخ خیلی خوب تنهایی واس خود گم نشی آخه مخت مختله او اوه نادو ریدوری دوری سلام مارلین آخ دوری میبینم که اینجاستی حالت استی. خوبه؟ نگران به نظر میگه نه نه نه نه قیافم یه جوره بفهمی نفهمی نگران به نظر میرسه چیه؟ میدونی تو <سؤال> بلاخره محفظ شدیم آفریم <سؤال> محفظ شدی دل من دارم آره یعنی <سؤال> چی جوری؟ عزیزم با دنبال کردن سدفت دوباره برگشتی خونه ببین <سؤال> آه؟ <سؤال> آه، خونه آره خود برای تو نیستم؟ ای خودم تنده هایی؟ آره میدونی یعنی چی عزیزم؟ یعنی هر کاری که روش تمرکز کنیم میتونی انجام بدی داری؟ واقعا؟ آره من چه من باشم بازی کنم مامان موافق شدی عزیزم مرا پیششون مرا پیششون دل بندم <تصفح> آره موافق شدن <تصفح> قبول داری که منظره اینجا واقعا دل فریبه Are. Faramush nashudani. Film hakye duble digar dar website tine movies. I'm for get a four adjo your own can't forget a boy when you are or far like a song of love that clings to me how the thought of you just sings to me never Has someone been bold? Unforgettable in every way, oh and forever more. That's how way endearing it's incredible that someone so unforgettable to sister i am i'm unforgettable too mm -hmm. Thank you. اوف اوف اوف اوف اوف ما نو ما سیگار میکنید بابا اصلا صدا نشسته بود نتونسه وين هسه ولا برسونيت انا چي گره ما اکسل ما بابا چيسه اولدي گاري زواردي هست ايو اليو تخديت جوماز حافظ نظر نه اون بازيتونو بكنين واقعا كه ي سر يا بي ملاحظه Ina be dard e hamu shirgod. Je bari na shpa.